گل گلهای... خراسان، خراسان. بر برنامه فکری تعلیمی و تربیوی، با که با ها که سطری میکنه خلاف اسلام است میتونی برمه بگی که کدام کدام دعا رو یاد داری؟ دعای ننخوردن، دعای از خو کردن اینها اطفال شیران خلافتند. اینها آینده درخشان خلافتند. هستند پیام است که بیاین به خلافت اسلامی و از گناهان توبه بکنند. بله، بله، اینها ها خراسانند.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 دلگفته های اطفال خراسان دوشنبه شبها از رادیو صدا خلافت لحظات خبری صدا خلافت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 سلام علیکم و رحمت الله و برکاته شنواندگان عزیز رادیو صدای خلافت به داشته های برنامه امشب ما خوش آمدید به امیدی صحتمندی و سلامتی تان نخست به خبرها می رویم اول سرخط چند خبر کشته شدنی هفته نیروی راقی در حدیثه تسلیم شدن سه سرباز سوری به خلافت صلیل, الصواری. صلیل الصواری. 18 کشته از کردهای ملحید در ولایت برکه صلیل الصواری. صلیل الصواری. و نزدیک به سی کشته از بسیج رافیزی در شمال بغداد صلیل الصواری. صلیل الصواری. نشید و درب القتالی. طريق الحیا علیه اقتحام، یابد و این هم مشروع اخبار تازه ترین گزارش از ایراق می رسانه که در یک سلسله حملات انقراضی چهار تن از استشاعیانی دولت اسلامی با استفاده از کامربانهای انفجاری در بین تجمعات ارتش و سه عراق حمله کردند. این حمله در منطقه از نزدیک شهر رخ داد و در آن هفته تن از نیروهای های کشته شدند. خبرهای رسیده از شام حاکیست که سیتن از اناصر نیروهای های سوری در منطقه البارده در شرق قریه تین ویلایت خود را به مجاهدین دولت اسلامی تسلیم کردند. یک حمله کننده استشادی دولت اسلامی تجمعی واحد های کردی را در استگاه بازرسی سوامی الالیه در جنوب شهرک رسول عین در ریفی ولایت برکه آماش قرار داد که در نتیجه 18 کرد ملحید کشته شدند. در همین حال در یک خبر دیگر آماده است که چند حمله ای دیگری دولت اسلامی حمله را بر واحدهای های کردی و گروه های دیگری ملحید در حیلوستا واقع در وسط شهر قامشلی انجام دادند. یک گزارش تازه میرساند که جنگ دشمن را در شهر فلوجه های ایران رهبری می اهالی شهر کی ابو غریب خبر دادند که آنها موترهای نظامی دشمن را که در حال رفتن به سوی فلوجه بودند دیدند و بر آنها پرچم ایران و نوشته های فارسی وجود داشته است. این در حالی است که در این اینواخر ها با همکاری های ایران پلانی حمله بر فلوجه را دارند. پس از اعلان خلافت اسلام ایران تعدادی از سربازانش را به جنگ ایراخ فرستاده است تا از اقیده باطل مجوسیت دفاع کنند. الحمدالله در درگیری های دولت اسلامی هزارها تن از این ایرها تا کنون به حلاکت رسیدند. این بار نیز الله فلوجه قبرستان برای دشمنان خواهد شد. یک حمله کننده استشاده دولت اسلامی بنامه ابو مغیره شامی بالای تجمعی بسیج رافیزی در شهری دجیر واقعی در شمال بغداد حمله کرد در این حمله بیش از سی رافیزی کشته و دهاتن دیگر زخمی گردیدند این بود خبرهایی دولت اسلامی بعد از یک وقفه کوتاه برنامه گلهای خراسان را بشنوید صلیل و صلیل صليل الصواريخ نشيد العباة ودرب القتال طريق الحياة عبين اقتحام يبيد الطغاة ونسي مصدر جميل صداء نو مسلمان رادیو صدای خلافت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شما را باز هم به با برنامه گلهای خراسان خوش آمدید میگم در این برنامه میزبانی ما ابو مسلم خراسانی و برادر گرمیم ما عبدالرحمن روحانی را بپذیرین با امیدی که صحت و سلامت باشین باز هم در برنامه خود اطفال را با خود داریم که شان ده برنامه‌های قبلی هم با ما بودن روحانی صاحب شما هم کلم گفتنی برای شنونده ها یا پیام چیزی دارین من بناوی خود سلام تقدیم میکنم السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو هم شنوندگان عزیز و برنامه خودشان خصوصا اطفال نازنین و دوست داشتنی تا با برنامه گل‌های خراسان خوش آمدید میگم خب ما هم میریم سراغ اطفال نازنین و در قدم اول سلام تقدیم میکنیم برای اطفال گرامی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خب اطفال گرامی الله کنه که جور و صحتمن و سرحال صحت باشین و با امیدی که برای شنوندهها ها پیام های جالب را برده باشین در برنامه امشب ما یک مهمان نو هم آمده الله اشانه به معرفی میگیریم خب برادر گرامی اسم خودت چیست؟ اسم؟ ما تاها ماشالا برادر شما را به برنامه های خراسان خوش آمدید میگم خب شنانده های گرامی در برنامه امشب ما کدام اطفال نازنین که هستن اشان را به معرفی میگیریم و چون در برنامه های قبلی هم با ما بودند که برادر ما عبدالله بود و برادر دومی ما احمد و یاسر برادر و برادر دیگر ما مصعب و برادر دیگه ما برادر که خورتره کس و 3 سال است اینا فکر میکنم که کلام لقب نو بر انتخاب کردن برادر شما لقب نو برتون انتخاب کردین امیر میشه که بر شنونده ها بگین صامی خراسانى الله صامی قبلا اسم از برادر ما تنها اسامه بود و حال اسامه خراسانی است و برادر دیگر ما محمد یاسر خب روحانیست فکر می کنم که برادرای ما کدام پیام های هم آوردن شنونده ها شما با ای اطفال گرامی میشه که هم صحبت شوید و پیام هایشان بر شنونده ها تقدیم کنین درست است قرار که اینا در نخوست برنامه باعده کدن ما پیام جدیدی داریم میریم سراغ پیام هایشان. اول از عبدالله شروع میکنیم. عبدالله السلام علیکم. علیک السلام. خوب است؟ تی خوب است؟ بله. چی گفتنی داری چی پیام آوردی برای برنامه امروزی برای گلهای خراسان برای اطفال مسلمان یک حدیث. میشه همی حدیثه بخانش بگیری؟ بله. و حال قدنسه بخلقین حسنین و مردم اخلاق نیک بکم. جزاکالله خیر امید است که شنوندگان عزیزم از این که بیادر کوچک ما عبدالله تقدیم کردن در سای گرفته باشند و با اطراف قد و با دیگر اخلاقی خوب بکنند. شما چی میگین خراسانی سیبده ای باره؟ جزاک الله خیر بواقعا که برادر گرامی ما حدیث را بیان کردن برای شنونده ها با امیدی که شنونده ها حدیث شنیده باشند و, و به با این حدیث عمل بکنند. فکر میکنم که برادر دیگر ما هم کدام پیام داره. بله بیادر بزرگتر احمد شاید آشنایی داشته باشین در برنامه گذاشتم. پیامش تقدیم کرده بودیم امروز میریم سراغی بیادر می پرسیم چی توفهی برای برنامه امروزی آورده احمد سلام علیکم و علیکم و سلام و رحمت الله و برکه احمد چیال داری سیحتت خوب است؟ بله در خراسان خسته شده انشالله از وضعیت خراسان نه حیات ایجا چی تو سپری میشه زندگی روزمره خوبی سپری میشه ما در زیری چطری شریعت اسلامی حیات حیات حقیقی است بله میتونه؟ بله خواب میریم توفه ایتا مشنویم توفه ایتا به عزیز تقدیم کو. یک حدیث آوردیم ما الله در برنامه امروزی ما شاء را بیادر جدیدی میارن احادیث نبی کریم صلی الله علیه و سلم تقدیم میکنن کدام حدیث تو توفیه وردی خیرکم من تعلم القران وعلمه بهترین شما کسی است که قرآن نبی آموزد و و مردم یاد بدهد ما بسیار عالی امیدوار استم که علمای امت و حافظای امت کسایی که در تربیت اطفال مسلمانان نخش دارن و این قرآن به درستی یاد بگیرن و برای اطفال مسلمان به صورت صحیح تدریس بکنن جزاک الله خیران احمد و یک ما شاء الله خراسانی سیب سراغی دیگه بیاد رام میرم بخالم فکر میکنم میپرسیم از یاسر برادر که یاسر برادر چی آورده و برنامه خد میریم سراغی یاسر السلام علیکم یاسر بله علیکم و السلام و رحمت الله چیال داری یاسر خوبستی بله حیات در خراسان چگونه گونه پری میشه زندگی روزمره به خوبی سی میشه، الحمدلله چی گفتنی داری امروز به شنواندگات کدام توفه آوردی؟ بله چی توفه آوردی؟ تعریف ایمان ماشاءالله تعریف ایمان ایمان هر کس ادعای ایمان میکنه همه های ادعای ایمان میکنه ولی اکثر مسلمانای امروزی متاسف و با تعریف ایمان آشنایی ندارن با حقیقت ایمان آشنایی ندارن میریم از زبان ای بیادر کوچلو حقیقت ایمان چیست و تعریف ایمان چیست ایمان به چی چیزها گفته میشه بگوک الإيمان، ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه و واليوم و رسوله و خيره آخر و تؤمن بالقدر خیره و شره. الله بسیار عالی. اینی ای تعریف ایمان بود. میشه ترجمه شنبه شنامان دکو تقدیم کنی؟ بله. بگو تؤمن بالله و ملاکته الله ایمان داوری و کتبه الله و رسوله الله. ویوم آخری و, و روز آخریت تومینه بالقبر خیره این ایمان بیاوری به اندازه خیر شهر که از جانب الله یعنی خیر شهر از جانب الله است ما شا الله جزاک الله خیرن امیدوار استی مطفال مسلمانانی عزیز درس بیادر ما عبرت خوبی گرفته باشند و به طریف ایمان آشنا شده باشند خوراستانی سیب میمونای دیگه می داریم ما. بله، مسعب برادر است و اسامه خراسانی است و محمد یاسر است از اینا هم میپرسیم پرسیم که به برنامه خود چی تخفه آوردن درست است، قبل از سراغی بیدارا بریم ما یک هدیه آوردیم برشان آه، تقدیم شنوانده ها می کنیم هدیه تور توریست که در آخر دولت اسلامی مکتبت الهمه. البته کتابخانه همت از دولت اسلامی برنامه‌ای را زیر دست گرفته برای تربیت اطفال اطفال می به شکل ساده و به طریقه آسان حروف علیبا عربی را یاد بگیرند و حروف الفبای عربی از الف تا یا در قالب شری تهیه شده و این را تقدیم می امیر خیلی میشناییم روحانی صاحب درست است؟ درست است میشناییم بعد از او با میمانای جدید باز هم در خدمتی شنواندگاه باشیم تعلم الحروف حرف الالف حرف الباب باب حرف التا تعلم الكتاب اكتب حرف الشین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 خیر الاسماء وذکر ربک صبح مساء زکن نفس من الاهوا زکن نفس من الاهوا زکن نفس من الاهوا حال میرم صراقب یادري کچک ما مصعب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله عليكم چیال داری مصعب خوب استی خوب است الله خوشحال استید در خراسان بله چرا خوشحال استید در خراسان از کدوم دولة الاسلامیاست بگو تو بگو دولة الاسلام باقی دولت الاسلام باقیت و تمدد ما شالله ای محضو باقیه را خواستم و مکمل شعار دولت اسلامی رخند خب دولت الاسلام باقیت و تتمدت با ازم الله تعالی حال میریم سراغی پیامت چی پیام آوردی چی توفه داری؟ دعای کس خواب بیدار امیر میشه امیره میشه و اطفال دیگه هم یاد و اونام بعد از خیستن از خواب و بخوانند؟ بله بو خون کو تو الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور ما شاء الله الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور ما با ترجمه ادوا د هيفته نمی پردازیم چون در برنامه گذشته ترجمه ا را گفته بودیم نه از زبان اطفال شنیده بودیم نه خراسانی سی بله از زبان دیگر اطفال هم شنیده بودیم که ترجمه از دی... دعا کرده بدن خب تشکر جزاکالله الله از پیام جلبات دیگه کدام گفتنی نداری؟ نه ماشاالله در برنامه های آینده هم امید داریم که تا با طفل جدید باز هم با ما باشی درست است؟ درست الله خیرن السلام علیکم حال میریم سراغ بیرداری کوچکی دیگری خود اسامه خراسانی السلام علیکم ماشاالله بایی جوابی سلامت بسیار بسیار جالب بود خواب با برنامه خودت یعنی های خراسان خوش آمدی جزاک اللہ خیر ماشاالله جزاک در برنامه گذاشتم با ما بودی بله حال در برنامه امروزی چی توفاوردی سورینا سوره ای ناز ای کدام سوره میشه بخونیش بگیری؟ بله ما بخون بسم الله الرحمن الرحیم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الَّذِي النَّاسِ ماشاءالله اسامه خراسانی با تداوت عالی سوره ناسه به خیرات گرفت جزا الله خیرن اصامه بیادر در برنامه آیندم یک توفه و یک پیام جدیدی میاری بله منتظر پیام و توفه جدید می باشیم السلام علیکم الله نگه دارد خواب خراسانی سیب ما تلاوت سوره اناس رو از زبانی اصامه خراسانی شنیدیم حال میریم سراغ کدام بیادر؟ بله روحانی سیب و یک برادر کوچک ما که حنوز پیام خدا نگفتن میریم پیام ازی برادر مشنایم از محمد یاسر برادر که بر اطفال نازنین چی توفه آوردن میریم سراغش میشه شما از ایشان پرسپال کنیم بله میریم و از ایشان میپرسیم که به برنامه خود چی توفه آوردن محمد یاسر برادر از شما میپرسیم که چطور از ولایت خراسان از نظام خلافت اظهار خوشی میکنین یا خیر بله ما شما در حیرات یاد خوشحال بدین یا در خراسان خراسان ماشا الله خب برنامه امشب خود چی تفای بر اطفال نازنین؟ یک ترانه ماشاالله میشه که یک رو به خانش بگیری؟ بله ما همه گلهای خراسان شگوف هاز نسل مردان دعوت نمایم هر مسلمان به نور و اصل ایمان ماشاالله ترانه را فکر میکنم که شما از رادیو شنیده و حفظ کردین و حال در برنامه بخونش گرفتین اما درست بله ماشاءالله برنامه های رادیو صدای خلافت همش نهی خودت بله کدام برنامه زیاد مورد علاقه خودت است برنامه خود ما ماشاءالله برنامه خودتان خی از تک سوال میکنم در مورد برنامه خودتان درست است بله در برنامه های خودتان کدام سخن بر خودت جالب تمام شدن. پیام احمد برادر ما شاء الله میشه که از پیام احمد برادر یکمشه برای ما شما بیان کنین؟ بله ای کفار و نوکران کفر آیا شما میخواهید که رادیو صدای خلافت را از بین ببرید؟ نه هرگز نه ما انشالله که ای پیام خودت تا با اخیر حفظ کردی خب امی کمش مشنیدیم ان شالله کفایت میک چون ما در دقایق اخیر برنامه قرار داریم با شناده ها الله حافظی میکنیم روحانی ساب شما هم در اخیر اگر کدام پیام برای شناده ها داشته باشین تقدیم شناده ها بکنین. پیام خاصی ندارم امیدوار هستم که تمامی شنوندگانی مسلمان و مومین با تربیت اطفالشان توجه خاصی نماین و اطفالشان به و اطفال تربیت کنن که در خراسان تربیت میشن و اگر اونا توانایی هجرت به سوی دارالخلافت را دارن به زودی از دارالکفر به سوی دارالخلافت هجرت کنن و ایجا اطفال خود در زیر چتر شریعت محمدی و شریعت الهی با انگیزه دینی با انگیزه مبارزه علیه تمام کفار تربیت کنن اطفالشان در آینده آیند اسلام گردن. با همین امیدواری ما هم از حضور شنوندگان عزیز مرخص میشیم السلام علیکم و رحمت الله و برکات ما دولة الإسلام صول وتحري، ملة الكفر وجمع العسكري، وابعد الراب سيولا وقلعي، ما ترط من فلول من حلي. أي كفا ونكران كفا. آیا شما میخواید که رادیو صدای خلافت را از بر با ببرید؟ نه، هرگز نه. ما آرام نمیشینیم تاک حقایق را بگوش امت مظلوم و مسلمان نرسانیم توبه کنید خب لزین که شما قدرت پیدا کنید اینو کلان کفار با الله قسم وعده پیامبر ما صلو الله! حقس كشرق غرب زمين أزان أمتش مباشا سعي مسلم كتاب الفتن واشراط السعر باب حلاب هذه أمتي بعدهم ببعد حديث فنجزاره يقصد الشلاش عن سوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوا لأرض فرأيته ما شرقها وما غاربها وإن أمتي سيبلغ ملکها مازویه لمنها الصوبان رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی اللہ علیه وسلم فرمود یقیناً که اللہ جل جلاله برای من جمع کر زمینه بس دیدم شرقه غرب عن ده و یقیناً که بایشای امت من مرسد توانجای زمین که برای من جمع شوز این نور الله که خلافت اسلامی است بخشده ولكن كفار لا لا خشها يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأدى الله إلا أن يتم نورا ولو ترها اسلام نستید؟ مغاش دولتهای کفری چرا دهان شما را بستم؟ آیا رزق روزی ما، مرگ زندگی ما به اختیار الله از وجل نست؟ چرا هجرت نمی کنید؟ شیطان منهجیت شما میشود آیا بعد باخلافات شما ضروری نیست آیا شما را خبر کرده فکر کنید فکر کنید فکر من حطمیل شاب لم يرتسم في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 و نقطه را گذاشت که ما علیه کفار مرتدین مبارزه میکنیم دین الله را تطبیق میکنیم ولی عمل ثابت ساخت که اینا محض ادعا داشتن این برنامه را یک شمب شب ها و سه شمب شب ها از رادیو صدق خلافت فراموش نکنید ما برگشتیم، با جهاد و عزت برگشتیم، با احکام قرآن و سنت و با نهج سلف و صالحین برگشتیم. می خواهیم را در عصر فتن و فساد با عدالت الهی ممنوع سازیم. پس ای تاریخ، از عصر فساد نحظون مباش، از استغیان تا قیان. و از حکومت‌های ظالمان محضون مباش، محزون محضون ما محزون ما, ما برگشتیم و انشالله هر پارچه ورقت را با خونهای متحر خود رنگین می‌سازیم، برگشتیم ما هرگز مرتدین و منافقین را نمی بخشیم هرگز کسانی را نمی بخشیم که در مقابل دالر ناچیز آمریکایی که ایمانشان را فروختند برای دشمنان هرگز این اجازه را نمی دهیم که آنچهرا که قایم کرده ایم سقوط دیهند یا را که بنا کرده ایم منهدم کنند از ما بشنوید آیا گمان میورید ما از بین می رویم؟ آیا خیال می کنید که ما نابود می نه والله. تا قیام قیامت ماندگار ما خواهیم بود